خب بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الحوالة كتاب حوالة أصد كتاب حوالينك شما من تلبكار شما حسن وشما تلبكار الزيت خب من لن أصوات تلب داره و شما از زید شما میگی خب شما که از من طلب داری من از زید شما لطفی بکن برو قرض تو اسکی بگیر این میگن حواله شما من اینجا چیکار کردی حواله من میگه من میشم محال یا محتال شما رو میگن محیل یعنی کسی که حواله کرده در این این مثلا خودمون شما محیلی چون منو حواله کردی ها من که از شما طلب داشتم محال هستم اون آقا محال علیه بش میگن زید میگن چی؟ محال علیه و اون دینی که هست که شما منو گفتی با اون ما بگیر بش میگن بي... محال به اذا كان على رجل دین زمانی که بود بر یک شخصی دین دین فاحال به الى رجل له عليه مثله پس حواله کرد اون رو بر شخصی که اون شخص بر مرد دیگر دین داشت زمانی که بود بر شخصی دین بر شما اصلا تو مثال خودمون دین هست فاحال به الى رجل له عليه مثله پس حواله داد بر شخص دیگر که این شخص بر اون مثلش دین داشت یعنی بر زایت شما بر زایت مثل دین من دین داشتی صحت الحواله حواله چیه صحيح اذا قبلها صاحب الدین زمان دین زمانی که صاحب دین اون قبول کرد یعنی من یعنی من محالون شکار کردم قبول کردم که برم پیش محال اهلی شما که محیلی داری منو میگی برو پیش زید اگر من قبول کردم این حواله سیه. ببین اینجا رضایت شما و رضایت من مهمه ولی رضایت محال علیه و شوافع نکه کل فقه مثلا احناف رضایت اونها هم مهم میدونند چون میگن دین برش هست دین براش که نیست که رضایت شرط باشه و قبول المحال علیه معتبرن قبول کردن محال علیه آقا زید در مثال خودمون شرط نیست اعتبار ندارد مهم نیست بعد از این که حواله انجام گرفت ایجاب قبول شد شما گفتی برو من هم قبول کردم و یبر المحیل بها من التين محیل بري میشه از دین دیگه آقا من که قبول کردم میرم پیش زید شما دیگه بری بود دیگه من حق ندارم پیش شما برای گرفتن دینم بیام ولا يرجع بها صاحب الدين ان افلس المحال عليه او جهد میگه صاحب دین که اینجا منم حق ندارم بیام پیش شما این افلس المحال عليه اگر محال علیه که در مثال خورمون زید بود مفلس شد شکست خورده شد او جهد یا اومد این کار احناف میگن نه میتونم من در این حالت ها کار کنم به شما دوباره باز کردم خب در پواریخ یاورد ارکان حواله 6 تا هستند محیل یعنی شما که منو حواله میکنی. محال که من بودم محال علیه که آغا زید بود دو تا دین یکی اون دینی که بر یکی دینی که من دارم بر شما و یکی دینی که شما داری بر آغای زید و سیغه های این حواله که همون اجابه اینا ارکانه حواله هستم هسان که تا هستند شروط شو آورده باز هم تا هستند رضایت محیل محیل شما رو میگن که برد دین هست رضای محال که من هستم صاحب دین هستم آش شما تلب بدهکار منی شما موقع که من و حواله مکنی جای دیگه شما میشین محیل من میشم محال رضایت محال علیه میگه شرط نیست و دین هم میگه قدر و صفتش مشخص باشه و اون دین هم میگه لازمی باشه چه در حال چه در آینده و اون دینی که الان بر شمایه که من بر شما دارم و اون دینی که شما بر آقای داری در مثال خودمون میگه مصابی باشه در جنس و قدر و اون وقتش حلول یا تأجیلش در اون صحت و تکسیر این نوع منظور همون دینه باله و همچنین دینه محیل و دین محال عليه از اون دیونی باشه که صحیح باشه به آن و بدل کردنش با چیزی دیگه لذا گفته صحیح نیست حواله به دین سلام سلام بیشفر روشه خب پس بریم جلوتر و لا یجوزو اذا کاند دینو دراهم ایوحیلهو بدنانیر جائز نیست زمانی که دین درهم باشه حوالش بکنه به دینار ولا اذا کان دانانیر ان بدراهم، و همچنین جائز نیست زمانی که دینار بود حوالش کنه بدراهم، ولا علاو لا عليه، و همچنین جائز نیست که حوالش کنه بر شخصی که دین برش نیست، الا مگر ان یکن ضمانا مگر در بحث زمانت، که اونجا زامن درست چیزی برش نیست ولی زمانت محیل عليه بحذير رفته، زماناتو شكر كاردي؟ ويجوز للمحال عليه ان يحيل صاحب الحوال بدينه إلى ثانٍ، وجائزة بمحال عليه. دار مسال خد مناقة زيت. يقول إن جم صين فرس. من از شما طلب مش ما أزيت. شما مناقة من الحوال ميكون بزيت. شما مشي محيل، من مشي محال، أول مشي محال عليه. میگه جائزه برای محال علیه یعنی برای آغای زید در مثال خودمون که منو که صاحب حواله هستن حواله بده به یکی دیگه که اون برش طلب داره که زید از اون چه داره؟ طلب داره و یوحوله ثانی بها على ثالث اون یکی دیگه میتونه به به ثومی هم حواله بده فیانتقل الدین الى ذمه اخیر دین هم به ذمه آخری منتقل میشه چون من قبول کردم من اینو چکار کردم و یکخدو بها وحده و تنها همون یکی گرفته میشه همون آخری چی میشه؟ گرفته میشه این شد از کتاب هواله که خیلی مختصر بحث آورده بود